بخور الله من الله الحمد لله رب العالمين. الله علی رسول الله و آله طیبین و طاهرین المعصومین و علیت دایمت حالا اللهم هست شد که بحث درباره قش و متعرض روایاتی شدیم که در دنیای اسلام راجب قشق آمد میدونم دیروس وقت یه اشتباهی کنیم بودیم این زبایت رو در کافی در احبار داره قضا و تجاره رو در در برده درسته قضا و تجاره داره بعدش بابا قشق داره این زبایت در, در بابا قشق من اشتباه کردم تصییم شده ارز شد که چند تا روایت رو اول از خود از ما بخونیم یکی ایش روایت که بسیار سند خوب و صحیح و مسادر متعدد از هشامن سالم داشتیم انا عبی الله از هشامن حکم داشتیم انا عبر حسن علیه السلام بله که انا قشناف علیه سمن و نغشل های حلال هایی پروتیشون از جمله روایات دیگری که ما داریم که در مسادر ما آمده در این شماره دفت در این کتاب از کافی از هم باب غشک از خیلدم از محمد ابن یخیاب از بعض اصحاب نام حالا حصولا گاهگاهی در روایات میتونیم به قرنه راوی و مریعه این را پیدا بکنیم اما خب خیلی ازوش علمی خیلی زیاد نیست و ان سجاده سجاده را علیه این کذای سجاده ایشون از خط قلوم بست و تضعیف شده اصلا ان موسف نوک در خوافی سندی رو که ذکر کرده سنده رو نیز به خاطر رو بوده سجاده و بعدم ارسال بر دست خود موسم نبت هم سابقا یه وقت متعرضه اخبارش شدی توسیق سریحی نداره تو شرف شخصیت رسول معروفیه هم است. اما تو اسطحه همه هم لوقت به نداره. توسیق سریحی نداره بکن خب مثلا سخوان از اونه رو کرده شواهد در دست داریم که این حیث شواهد میشه قبول کرد اون روایت معروف کباب مال ایشان در عین شدوشی یا بی حد ذهن معلومه که چرا انگار روزی درده دوستان توی کین میگه باید گوش بخوره گفتم با صبر هرنزه اخلاق گوش خوردن مفیده نشه مثلا چه گوریب که میپزید نه کباب کل با کباب غری کباب نیست میگه خودم تا حفظی بردرسیم رنگ رومون باز شد آدرون شد دموه دار این شد در و از دیر حاضر کلم بر معاملون به سالتیشون که حضرت فیرمی کن این حنایت بهشون داشتن که رنگ روشان خوب بشن حلایه حاله و هر حاضر شیطی از شایی نیاده از که موسفر انصافش یک شواهدی بر قبول رواشی شان حتماً شده، ثابرت وجود داره که ادعای گیر بکنه. البته این دین رواجه نقطه خاصی داره. این صاحب هم ارزش داره 910 قرص چه. از کدم استاد هم از راه های خاص خودشون ایشون توصیه ایش کرده. ایشان روچه مصحف راکواسیتی با این یه کوفی و عثودی ساکن واسط شده و کتابی هم داشته که حالا من واقعاً منو متعیریم شیخ توسی تریده که به موسمن وقت داره در کتاب فهرست از رای ابن عبی عمره و عجیب که از فهرست ابن عبرید هم هست که از رای اون به نجاشی هم از همون فهرست ابن عبرید نرمه کنه من شاید توی فهرست ابن عبرید دو راه بوده همه این که شیخ در آورده بارایی که نجاشه بود. اون دوسته راه نجاشه هم صحیحه اما ابن عبری عمر ن یعنی این مطلب نشون میده الان ما در کتب رواییمون روایت ابن ابی عمر از موسفل بخت نداریم شبا نشه من اینکه بر این که برای اینکه که دقیقت های ظالمی است صفوان رو داریم صفوان از موسفل بخت رو داریم اما ابن ابی عمر تو روایات نداریم لکن در اجازات داریم ما حتی احتمال دادیم اون عبارتی که ابن عبی عمر لای و لایورسل و همسقه قدر متقلش اجازات باشه یعنی شیخ رحمه الله و بزرگان اصحاب و اطلاع بر اجازات گفتن هر کسابی رو که ابن عربی عمر و در اجازه ابن عربی عمر باشه این خودش علامت به ساعت احتمال هست این احتمال وارد حالا اگر این اجازات شد اون یورسل چه خواهد شد دیگری. در هر حال این احتمال هست که ناظره به اجازات باشه اجازات رو اسطلاح روی از گرفتی این جایی در فهارس باشی میشون اجازات اون جایی که در روایت باشی میشون اصانی الان در کتب عربعه احتمال مشوال در غیر کتب عربعه دیده باشن در کتب عربعه ابن عبی عمر از موسیقی وقت نداره صحبان داره اما تو اجازه شیخ تلسی آماله ابن عبی عمر و من بگیم بگیرم شیخ اشتباه کرد شن مرهوم نجاشین هم همون طریعه مرهوم من جپی مرهوم شیخ واحتلب اون کتاب اون اخبران اونوی ابن عبیجی هن ابن ورید مرهوم نجاشین هم کتاب اون اخبران اونویه علي ابن احبد علي ابن احبد همون ابن عبیجی از عابیم اگر خواستا مرا کن به کتابای رجالشون علی ابن احمد در کلام نجاشی همون ابن عبیجی لفرقمه از کردیمیکشون یکی از خاندان اشعری ها و عرب های اشعری قومه ما از ایشون آشنایی نداریم به طور کلی هیچ از اشان نمیشناسیم هیچ فقط میگونیم که اشون کیری در حدود مثلا نزدیک انجام سال یا ایچیزی هم شد بیشتر بعد از خلط مرحوم ابن به برداد آمده و به آقایان اجاز به دو بزرگوار ما مرحوم شیخ توسی و شیخ نجاشی اجازه ای رو که ابن القیبی شن نوشته به ابن عضد الغالب داده فقط بهش اجازه یاد داده به این دوزغوار و شاید در حدود مثلا 50 سال شده, شده چیزی بیشتر از 50 سال الان دقیقاً نمیتونم بگم خیلی منم چه جوان بوده ابن ابن القیبی شن خیلی اولو به اسناد داره درحالی شیخ هم نجاشی دیگه ما ازشون هیچ خبری نگاریم تمام معلومات ما از ابن عبیجید اینه و اما اینکه اسمش مثلا علی ابن احمدون و هرنون طاهر عشقری بر نیست اینم ایکستان اینکه نجاشی در چند جای کتابش مختلف ازشون اسم کنه گویم بقیم بیه ابن عبیجید گویم بگیم بیه ابن عبیجید گویم بگیم بگیم مثلا علی ابن احمد گویم یه علی ابن احمد ابن ناصر ناصر تاهرSamur اسامی مختلفی و تعبیع مختلفی رو مرحوم نجاشی داره. اون اسمان هم از اونجا ها بگرفتیم بس هم شرهاش رو داره شرحالشو نداره شرحال ابن الرعید اسم ایشانو برده که من دیدم اجازه ای رو مرحومه ابن الرعید به خط خودش رو اینو آقا داده. به هر حال موسبن برد برد نیست میشه اجمالا حالا اگه ما مهیار رو اصطلاح خودم رو هشت نمبر درست بگیریم یه هشتا درصد خوبه حالا نه سقه سری ایمون معنی هست نه اونطور یه حدود 80 درصدی میشه برش درست کرد. تا این در سند مرموم شیخ کلینی یکی سجاده است که تضعیف شده یکی هم بعض اصحابه ناست که دیگه مشکل بده اون وقت در کتاب تهذیب این روایت رو مستقیم از موسطن برق نقل کرده در کتاب تفضیب موسطن برد نقل کرده چیزا که در میشه در مشیخ هم طریق نداره حالا وقتی بحثی هستی یه نگه در مشیخه طریق برداشته باشه در فهرست داشته بکنید در فهرست داره در فهرست داره ما در مشیخه بیشان طریق برداشته باشه لیکن مثلا یه اتقاضات ما طریق نمی که کتاپ می شده کتاب بیشتی باشی در کل کتاب یه دیمه را به سین هرمون کنه این ساخن خیلی بعیده بسید کتاب روی هم رفته بسید کتاب مشروعی بوده این اشتباه نسید روی همرفته کتاب مشهوری بوده شواهدی داریم چون شو در جان میگه که سرفان آله دفعه علیه موسفر کتاب حالا این سرفان دیمه اصلا موسفره که ابن عزیز در سراعه و منزاله که مصطف نام این کتاب موسم که بعد از شیخه یه قرم بعد از شیخه و از کتاب موسم نبود مستقیم نبود شواهد مانشون کتاب بوده کتاب خیلی بمنام نبوده درقه میکنی اما نجاشی نبوده قرعه تو که این کتاب ده نجاشی هم بوده کتاب در افتیار نجشی. به شیخ به اجازه ابن وریده یعنی همچنو که من سابقا توضیح به آشنا بشین توضیح ها تو باشه آشنا بشین چون این کار نشده یعنی باز هم این کتاب که اصلش از کوفه بوده حالا یعنی بازه هم بخصیب باقی اراغه متاسفانه این دو بزرگوار ما نه مرگوم شیف و نه مرگوم نجاشی نسخه کوفی از کتاب نداشتن بگرد این واقعا نمیدانو چی؟ شما ده همون واقعا متحیرم واقعا تح بغداد کوفه یا مثلا بردو تسامح داشتن مثلا این دو بزرگوار ما هر دوشون رفتن به گوم هر دو رفتن به ابن وری به فهرست ابن وری از فهرست ابن وری و هر دوشون یک مصدر هر دوان فهرست ابن وری لیکن در نصفه شیخ توسی در فهرست شیخ توسی برمگرده به ابن عبی عمر ابن عبی عمران بخزاده خیلی عقیده یعنی واقعا برای ما هر ابن نبی عمر هم بغداده کتاب هم مال کوفه. این چی طور شده مشارق بغداد کتاب رو تهمون تا بدن نجاشی برسید این هم خیلی عزیزی برای ما واقعا یا واقعا ازامت قومی ها رو نشون میده در اون زمان انسابش که خوبه ازامت ها نشون میده که شاید در کل کتاب فرست شاید یک سلبوم یک چار کتاب از آنها قومه شاید بیشتر یک سلبوم شاید بیشتر. چارم بیشتر. خیلی از راه قوم یعنی اینها با اینکه این کتاب دست نبود، عرف میگم جای اختیار انرژی استم بوده که در اینجا بوده با عجیب اینه که اینها تعلیم نداشتن برمیگشتن به قوم هر دو بزرگوار به قوم آقای نگارشه ماصیر علی بن حکم اونم از بزرگواران خالص در راه بوده به هر حال دو تا اجازه ای که داریم اجازه فردا از قوم و معلوم نیست شواهد ما خیلی تعیید نمی‌کنه که کتاب موسیم نورد در اختیار شیخ بوده خیلی شواهد ما زیاد نیست این مورد این کار کرده. حالا این یه مشکل یه مشکل دیگه اینه که اینجا میشون آیه صاحب افرام و حدیث وسائل و رواه صدوق به اصطلاق یه هم موسیم نورد در وسائل این به اصطلاق این حدیث مبارک آورده. با همین قنوان اول از کافی رو بعد از کافی هم گوته بر الله و صدوق. دیگه از تحذیب شیخ نیمورده تکرار میکنی؟ بعد از کتاب صدوق رو از تحذیب هم نیمورده من تو نصفه خونه روشم احتمالا بر و صدوق یا اشتباه نصفه ایشانه یا نصفه اشتباه که و شیخ بوده چون الان در این کتاب جمال آحادی سیکیوری من اکس شده که در سه کت و در نسخه وسائل هم از که در فقیه بوده نه ظاهرا و رواهان صدوق به اصنادی هم روستم نبک ما خواستی نیسته و رواه و شیخ به اصنادی چون شیخ نیو برده از این که شیخ نیو برده ظاهرا اشتباه کرده یا خود صاحب وسائلی یا نساخ کتاب اشتباه کرده به هر حال به لحاظ سندی خیلی صاف صاف نیست اگر بخواییم صاف شب کنیم باید اینجور شیخ طریقی در مشیخه یعنی در آخر کتاب تهذیب بیشان نشان در فهرست خودش ایشان طریق داره و اون طریق صحیحه و این روایت هم از کتاب مصند بکره پس این روایت صحیحه با اون اجازه که خیلی معذرت مغضب بعضی مقدمات پاشون می نگی خیلی صاف نیستن خودم به نظر من قال کنا عند حسن علیه السلام که مصند جعفر طوماری باشه و این بود ف آدالانی و مسعود بین یادگیری. دینار نه ولی فثم قطع او ثم اون این محن راید. که دینار. ایشالا تا از وجود یک مخشوشه و و مخشوشه که نقشوش متألف می‌ذارن شما مثلا الان حسین پول خاری از نزدشون تعلق می‌کنن تزویج می‌کنن اون زمان مخلوق بوده و ان شاء الله متعرض می‌شیم که حتی توه احرسنتا متعرض شده که اصلا بی و زنانی نقشوش درست یا درستی ان شاء الله میان مسر در درچاه متعرض می‌شن ان شاء الله اون چی که از این لباس مبارکه در میاد اضافه بر قرمت قشم بلکه بالاتر از قرمت من دیروز بود که ارز کردم در پردود مدلول مثلا میگن اگر جایی نحی آمد معنای اون نحی اعدام شبیه هستن مثلا گفت لا تشبه خرم خرم محرکون خرم مثلا خرم محرکون میته خرم محرکون خرم نده خرم محرکون میتن حرمع الیکن میتر اگر جایی آمد حرمع الیکن میتر این اضافه بر این که تحریم هست زجنه هست اضافه بر این که دست شما رو میگیره که نزدیک این نشید حرمع الیکن میتر قرمه ما من دست شما رو میگیره که نزدیک میتر اضافه بر این ها قرمه الان میتر بداشد جنابه هست میتر یعنی به عبارت مخورد مادر بخواست چند باتی بحث تکتار کرده ممکن است ما بگیم از حرم علیکم میته حالا یا مطلق تحریم یا تحریمی که در دنیای اسلام منصوب به خدا باشه بده تحریم منصوب به خدا شد اگر تحریم منصوب به خدا شد این نیست که حرم علیکم میته فقط عقل میته باشه تو ذهن ما هایی اینطور دیگه که ما هم داره تحریم منصوب و احیان آیا مراد چیه نه بگیم من علیکم میته شما از میته محرومی این محمومیت یه زجر دو دست شما رو گرفته سه میگه ملک شما نمیاد محروم یعنی ملک شما نمیشه چهار اگه دست دی دستونه بشوری نجسه پای تو نماز نمیتونی باشن دقت بکنی این محرومیت میته البته نمیخوام بگم این مطلب رو قبول بفرمایید ترجیح بگید این محرومیت میته در واقع خیلی شوشو چه از زهرزی پیدا کرد مانعیت نماز در آمد نجاست در آمد امدارم پرسندی این که میری که شما نمیشه اینا توش در آمد توش در آمد اگه فروختین پول میری که شما نمیشه حربه معلی میته تا کجا تا جایی که اصلا شما باید معدوم بکنین معلی کنمه میته تا اینجا بلازیم تو چا خب بعدها نمیدیم شما در طیبیت مراکز متعارف دنیا عشان راست میگی پیدا شی فرمان بیمارستان اثرو محدود می‌کنه تو چاپی تو آتیشی نسوزونن کله بگیم هر معالیکول میگم همینه من صابره ایال عمرتون بشه در شهر حدیث معاشرت عباد عرض کردم ما این مضمون الان نظر رضاهی مشکلی میکنه که این حدیث تو عهد مخالف از با اجماع فقها ناراست مگه یکی از اینا عجیبی که در حدیث تو عهد داره که میگه اصلا نجی حتی نگهداریش هم جزو انصابو که اکثر اینا اوغلای انتخابین حتی سر هم خیلی لطیفه خیلی به ساکوسیاب اغلایی روز میخوره. ما چون آیه رو میگم مفاد این حدیث که شما مثلا یک منگل خون بده یه شیشه بزنی تو خونه نگذر. ظاهره این حدیث میگه حرام. خب فقط اینا قرار سره، فقط برای ظاهر اون حدیث اینه که نگذر حتی انسابیشم جایز نیست. نگذراییشم این حدیث معیده بونه خوب دقیق بکنه شون احادیث رو و بعد اون جهات ظالمیش معنی از این تحلیل های قانونی بشه بدید این حدیث معنیش اینه فنه برای الاس دینار مثل اخیر در رو به یدیر این این که امام میاد دینار رو نصف میکنه نصفش قشت بوده نصفش تلا بوده نصفش تلا نبوده این که امام میاد نصف میکنه این در حقیقت خود قطع کنه این مصدار منقشتنافل این تمناز این تطریق رو بانه. ما به ذهن هم افتاده نمیدون منقشتنافل این ها یعنی قشت نفینه حرامه این اصلا میاد بالاتر از حرام حتی تو این نمیاد که بینش واسده بالاتر منقشتنافل لذا این همیشه در روایات اون نکته فنی رو در نظر بینید شاید شما این مطلب در نمیده در حالی شما باید اضافه کنیم این کارموزی چون من همیشه عرض کردم اهم وضایف احمده علیه مسلم یک یک سنتی که منغول از ان رسول الله ثابت بشه که آیا فرمونه ایمه دو تفسیر به شون سنت سه حدود اون سنت بیان بشه این خیلی مهمه مثلا من قشنا نه این چیه؟ توش در میاد معاملی بیرای قشق باطل یادم در بکن یا در میاد فقط قش حرامه یا اگر قشقر سیار برای ثابته خود قسمونی یا بسلام میاد این روایت خیلی عجیبه از این مقامات رد کرده اولا فرمانم فرمانم فرمانم فرمانم فرمانم این در کارب اصطلاح بالوعه در اسلام خطر چیه برای آب‌های کثیفه بالوعه میگه به ریاکنید به درش جایی که آب خوردن در استفاده اون ول الفه في البالوعه حتی لا یبا شیء فیه قشوا از عجایبی که امام بیان جووده پس اگر ما روایت مبارک اینو معنا بکنیم امام که عن ما نه سنت پیغمبر من نقش نامه علی السلام رو معنا میکنه چه یک قرمت قش دو آثار قش مثل معامله کردن برای اون درست نیست سه اصلا اون قش قش دسته دسته قش اون چیزی دسته قش شده اون قش باید معلوم بشه مثلا شما میگن این از بوله از در دونجا خیلی خدشیداریش هست دولار این طور مویه فقط اصلا یک دولار مخشوش که هست اضافه بر اینکه که حق نداریم شما دلار مخشوش رو به کار ببرید اصلا باید معدومش بکنیم، پول مخشوش رو باید معدوم بکنید این علقهی فی البالوه ده. البته شما ما موجود است که این احبه معانی از کنه من قشن آفر از در نمیاد اگر این فعل امام رو زنیم بکنید شاد ناظر به این باشه که در بحث غشب باید دره تا اون اوجه بسه. هم خود غشت حرامه هم محاملش باطله حتی لا یو ما نه به بید خورده لا که معناش احرامه عرقه ایف بالاتر بالا از این چیزی که وسیله غشت نست و طبیعتش داره غشت این باید مثلا از بین بره البته این یه جهاز استدلاله بره و باره که یه سابره اشاره کرد مشتراتی هم داره خ خوب, خوب بود که ما جداش میکردن تلاش کلاش تلاش جو میکردن و چرا مصفه کردن مثلا مین تو م مین به زرگرها های زگرها بوته مین که همون آاتشون مین تلاش جدا میشود حالا این بازی اون خصوصیات چیز رو باید این قلی توی واقعه که خیلی مزقیقا بهش اطلاع دقیق نظرم. این هم راجع به یک روایتی که از سرغ ما نروش شده یه دیگری که از ما نرمش شده. روایت در کافی در همین بار ابو علی اشعری عش... احمد بن اگریز ایشون هم از اشعری قوم مرد بزرگاریه عمل حسد علی بن عبدالله ظاهرن به قوم آمده باشه خیلی قومی ها از ایشون نهار میکنن ایشون عبدالله مغیره است. حسن بن عبد علی بن عبدالله عبدالله بارد عبدالله بن مغیره ایشون نبه عبدالله بن مغیره معروفه جز اجلاست هده از قومی ها از بزرگان و قومن چون حدیث همون یعنی هم کتاب های ایشان هم شبیه ای کتاب همون جد شدوز داره یعنی خیلی جان نگفتاده بوده خیلی مرد بزرگار جلو خلی ایشان ام آبایس هشام یا آبایس ابن هشام در کتاب تحذیب ایس هشام شروع کرده و ابتدام به کرده ظاهرم از کافی گرفته باشه چون خیلی به اوبایستم نیشون از اون باشون گفتن اوبایست مسققر انباسه آنستم باید اوبایست خونده بشه اما خب ازیز رفتیم اوبایستم نیشون ایشون سغت ان رجل من اصحابی هی ان این بعدش خبر مشکل داره در هم هم دخل علیه هر دقیق، فقال و بلخش. عزت خانم قشنگم فعلاً من ترشیه قشش ماله راست میاد چون خارج یک اجتماعی است اگر نانوا قشکر نان بخواد بلاخره خلاص یه بختن بقال هم نان می خره یه لبنیاتی هم می خره لب این جمله قشنگه چون همینش قشنگه این امور اجتماعی طبیعتشون اینطوریه یه یک طرف وارد شود این دنباله باله داره فعلاً یکم دهون مالون اهل نوستالژی رو بلند این هم بیشتر نظر به جنبه های حکمت و ملاقات این حکمه <تصفيق> این همه با امروایات در مقام تطویق بود این در مقام ملاقات به اساب قول آنون مراتب موادی حکم حدیث بعدی که این حدیث رو مرموم کلینی در کتاب کافی دو بار رو و هست که مرحوم شیخ توسی نه آوردن خیلی همچی و یک بار در کتاب بی جلد پنجام آوردم، در همه آدام و ستیاره آوردن یه بارم تو کتاب روزه جلد هشت آوردم. و از اجاره بیده که سندهاش هم فهم میکنه آن نمیدون تعمد داشته مرحوم کلنی وقتی یکیش که در کتاب به اصطلاح بیعه مختصره؟ از 6 سفر و مختصر هم هست میخونم محطم مختصر هست. اما اونی که در کتاب روزه خیلی مفصله 3 سفر 3 سفر 2 سفر 3 سفر خیلی طولانی حجب هایو قرار بمداره نمیدونم حالا مرمول کلینی متحمد بوده که مثلا در کتاب روزه یک مسبر آورده در کتاب روزه از مسبر دیگه آورده در این کتاب که الان نسخه که پیش من هست اول ما کتاب روزه رو گذاشته نه اول ما کتاب بی او نگذاشت صدوق هم تو بی اوورده صدوق هم بدون به اصلا سنر کتاب بی او صدو احتمالا این نسخه در او موجود بوده از اون همتره مستقی حال اونی که در کتاب بی این طوره عدت من اصحاب نام انا احمد ابن انا انا ابن ابن من احمد بن عبی ابیلار بعدیت سه، من آبی این خلافبن نهمان سررس بود، اسدیه سررس. این خوبه سردار، بسیار خوب در مسئله حدیثی تسلم حدیث نه چیز. اما اونی در بچه دهشش مورده. محمد ابن, ابن یعقوبی سرش بهتره نسبت به عجیبه اون سر که خیلی روشن‌تر و بهتر شده دهشتم بوده و مضمونش هم خیلی عجیب غریبه این میگم توی کاوی حدیث ارسلان زمین روی گاو شاه زاب شاه دا روچی گاو و گاو و کوه کوه و ولی بعد ذره یک چیز عجیب غریب نوامیه تصورتات یک مرحله کرده که مگر رمزونه باشه بهلا معنیش دو سه صفحه باشه میگه که یک تا اینکه اونو پیدا دیگه هم مقاصد جغرافیا و نجوم و غیره خصوصا این خانومه چرا گفته زینوار عطاره اینم خیلی عجیبه به هر در جلد 80 این جوامع محمد بن یحیی که استاد ایشانه ام احمد بن محمد که مراد اشعریه علی عبدالرحمن بن ابن اجران که سرغ از سقطوان که خیلی جریوبران علی بن حماد از این سنه هم بهتر از اون جهده پنجمه خیلی بهتر از اونه به هر حال معلوم میشه که این دو تا احمد یعنی احمد برقی و احمد عشقی برای این دواست نقل کردن در برقان بوده انده حسین ابن زیده هاشمی این کچی این پرزند زیده به نظر دو ساله بوده نوشتم از زید چهی شد دو ساله بوده, بوده ساده و حسین ابن زیده پیشون و وزن و خودشون ایشون کردن و یکی همین کانومی هم, هم برایشون برای دادن در نواد آمدن خیلی همین گیرگی بوده مرد بوده به زد دمعه الان هم ادهی از حسینی کلن در دنیا به ایشون در باب انسا به حسین ابن زیده زد دمعه حسین ابن زیده هاشینی خیلی توسیق سریح روشنی نداره حالا شما داریم مثلا خاندان امامت رو که این توتین ورزه دیدن انعبی عبدالله علیه السلام قاد جا از زینبال حتاره علیه هولا سودا بوده که کارش بروش عرض بوده و چشماش هم بوده الا نبی و بناتی و کانر طبیع و منحون به دخترهای پیغمبر هر زنهای این زینب اتاره رو تا جایی که من خودم گشتم فعلا غیر از اینجا جایی ازش نیدم در کتاب سنیه ها هم در مثل استرغابه مراجعه کردم اسم نیشان نیدم که زنی بوده میاماده خدمت پیمنبر و کارش عکس چیده من فعلا پیدا نکرم اما خب تفباقات من هم فعلا کافی نیست پنگ در تضاییه باشه در بلید. جا از النبی النبی. یه روزی که اول این او ع تا به اوا الان سااح نوی ف جا هم نبی این خانم اینجا بود فقالندبی النبی که نام به ک کنه تابد بیوت بویوت چون شد تا هم هنرا هست خونه ما خوشو میشه فقالت بویوت که بهلی که احیت بیان صورت توی معروبه که پیدابر کرد. دارای یک خوشبوئی خاصی داشت بعد از جایی که رجب میشد تا مدتها همون فضا هم بوی خاصی میگید افراد میتونن سن تشویق بزنن پیامبر اجازه شد فقال له رسول الله الله با اختلاف زبان اذا بعتي فاحسني في اعزم نفوسی نیک کار نیکو احسان خوب چند تا نیکو کار رو میگفتارید این کردار اخلاق نیک کار خوب بکن ولا تکشی دنبال گش نباش چیزهای غیر اسکی رو وارد نکن فنهو خال الله و حب قال المال هم مال برکت ایجاد میکنه قهوه الهی در این است که انسان قشنگ تا اینجا توی نکاسه واقعم تا اینجا بعد از این اضافه زینب یه فوال از زینب یه آنستان برای این نعمدن برای بر از عظمات الهی سوال رو کنن و حضرت شروع میکنن که این زمین یه، این زمین حلقهی ترقهی رو چیه خیلی مفسر حوائیست ماهیست ماهی بود از یک دیگه خلوص بسیار بزرگیست یک بالش این تا یک چیز خب دوسته صفحه بعدش ایناست از اجایب اینه که کلینی این شرک طولانی رو توی کتاب روز <تصفحه> قسمتی که مربوط به فیزیک میشه تا اونجا توی مکاشو ورده بلا فاصله بعد از این میرسیم اون جغرافیای ارجبتعلی خیلی شده عجیب است و حالا غیر از اینکه خالص میشیناله اثبات علمی کرد یا نه یک چیز عجیبی که در این هست چطور برای این که همایم مواملمون در این ذنکه در این حالا ارسوشا مثلا به هم خیلی عجیب جغرافی به انصافا خیلی وقت مرحوم صدوق هم اینو رو بی این عنوان رو برده رسول الله لزهن من احتارت الحولا اضافه ایسی یه مقدماتی ذکر نکرد از کرده وقتی صدوق نرمو میکنه بی این صورت و سیغه آره میان که گفته قال رسول هستی صحیحه نه این حاکی از اشتهار این حدیث در قومه گوده پترو کنه نه حاکی از صحت حدیث اصلا هم برای شما خود دیم. هم احمد برقی نعمل کرده هم احمد عشقلی عمل کرده در قسمت یعنی به امارات مختصر یه حدیثی که افتاده بوده ما الان بر اثر گذشت زمان دنبال سند می اخسیم در اون زمان در واقعی کسی می گفت حدیث زهن والا اطفالی می دونستن توی میراثای احمد عشقلی احمد برقی هم هست در قسمتون این کن بگم زمانه عوض شده عطا اون اون ما باسر ایشون که گفت خالد رسول خداش معتبره اعتبار سند پیش نیست اشتهار راست توش هست نه اعتبار سند علی حدیث چم شده می تو میگفته قصه زینب عطاره هم میفهمیدن زینب عطاره کی نذ به امضای نغم من اصلا میخوام خود غمی ها لذا ایشون استفا میکنه قابل رسول الله ل زینب عطاره میخوام سر بشیم نه اینکه این, این علاقمندی که مثلا سند سریه معتبر اگر نه رو به هم رسوله تلحمار داده پس آن بعد این یک حدیث دیگیری که در مصادر ما هست که فعلا من تو مصادر پیدا نکردم راست میگم خیلی گشتم من اعتبار کلی نداره اصلا اسم پیدا نکنه ولی استغفار و صبران نیگاه از این که زیاد داره تو استغفار همین دستا یه داخل از عایشه نرف از اولش بگم الحمد از در و معصوم مثال اشاره این از که گفتن هر مسترای قدیم مشایخ خودش گفتن مثلا الحمد احمد حضور جناب می محمد حذر ثنا محمد می محمد حدیث محمده به حلی سلیمان همید یاد صغفی این عناسی بلیمانه کار است کار این برده به مدینه از فارح ستمل حمولا فجار از حسا و از براق آیشه خواه فجار از مومن جنگی از حسای یا بخورتر روی دفن و از حسای یا حسای که انگی عروسون یا وزف ویده بسیه مشکل و از خودتی الله. عرضید داریم فلا را بیامول و اشامو علی. فکر کردیم فریاد زمانی فلاو ارواح از نه رزمن. فلاو و داد داد لا همین از خب بعدش قالم خب. حواله امام رسول الله صبا با نبی سلام مال چي ها خندا حالتي ها داشتا علمي در چاي كه نوع عظيم بعدش نه نماز كارو يا عائشه حواله رسول الله صبا الله سلام چه هديغه از حال مردن شخص و عزيز از چاي حواله يوراس در قامالي اما این معنی مضمون این دلیل رو اما این مضمون که مال سماوات و زمین و و ندار نیست کافیه و در ما اما این عنوار، اون وقت این چیزی که راجع به زمین و آسمان و این شاید کافی این زیدش رو دیده خیلی خبر عجیبیه و از کسی روزه بود هلا هم حدیث دیگری که ما الان از به داریم که سندشم به حساب از به مشکل خیلی و حساب این زیده رو باید مثلا تا حد خودش بد نیست اما زیدش خیلی که طولانیم هست خیلی ضدیل و ممکر است که تعبون شمشه از کنه که این روایت ما یه روایت دیگر در اینجا هست بله این روایت شما دویگه آخر وقت من بخونم شما به چارده که کافی و تحضیح و فقی از ابن عبی عمر در کتاب کافی ابن عبی عمر آمده که دران اشتباه از کتاب سکونی نهار کردن نخواه رسول الله سالالله علیه واره انیشا و لبن بل ما لذبه این دنبه یعنی اگر بخواد خودش بخوره اشکال نداره اما بخواد بفروشه اشکال داره اینم انشاءالله به وقت بعد تحرض میشیم که ثابت هست یعنی رسال <تصفيق>